آیا خودم باعث نبودم انسیب کنم؟ آیا و الله نشان فرماییم. اسم الله الرحمن الرحیم الرحمن. الله علی و آل حجیبینا و لعنت داریم فعال <سؤال> داریم جمعین. اللهم افکر ما ارحم نه به رحمتی یا رحم نرفیم. سکونی بود که خب مقداری مردش شروزی آن مارکر کردیم عبارات از ها و تقریبا گفت که آنچه که در این جهت در تحرکات و بود ما رو خوزای مختلف داشتیم نگری کردیم این ابراک چه نگران کردیم و تکرار خود دیگه بکندن درشد اونم حالا از کردیم خود ما یا اش با رد تحقیق و حال سکنگی بیشی طبیعتا برای تحقیق و حال ایشان باید از خود ایشان از زمان ایشان شروع کنیم جلو که در پرنه دونگون بود لیکن چون در اینجا عبارات از خام ما بیشتر متعرض به کلمات شیف شده ما احتداقا با امرال موقع خود کلمات مرحوم شیخ توسی رو و اصولا برخوردی که از با بایشان داشتن متعرض میشیم بعد در درمی یعنی با اون سیر تاریخی که داشتیم عرض کنم راجع به سکونی که از اشاره کردم مناسبه که همون شخص ایشان رو از زمان ما صالح شروع کنیم لیکن از اون زمان ما چیزی نداریم؟ پس در رتوه بعدی کسانی که بعد آمدن اجمال بزرگانی مثل ابن عبیو آمه و ازشون رو باید نه کردن تحمل باید که گفت بزرگین شخصیه دیگرشون نرفته در عبدالله مغیره و مثل فضالات نحریو و چمیره در زدار جونه چند تا از این بزرگان به قول فهم از خواب چند تا از خواب اجمالشون هم اجمال. رتوه بعد از این رتوه بعدی ر مهم ای که این که که داریم نهر کرده مثل مهموم ابراهیم حاشم بعد از ابراهیم هاشم ادهی زیادی در قوم خب دفت بکنیم چون در بغداد و در کروفه نه در قوم از ابراهیم حاشم این کتاب سکونی رو نهرم میکنه احتمالا این خیلی اجمالیه در توضیح بعد است احتمالا چون سکونی اواخر آخر و عمرش برهی آمده احتمالاً ادهی از قومی ها مثل برقی یا اهل ری مثل سهل دون زیاد در ری از نوخلی یا حالا کل کتاب رو یا در کتاب رو نمید بر حال مجموعی کار باز در قوم در قوم و اصباب قوم بعد از اقرائی نهاشم عدد محتنابهی از جناب قرائی نهاشم این کتاب رو نمید که یکیشم پسر ایشان علیه قرائی یکیشم سفاره ایشم سعده اردالله ایشم محمد احمد سار کتاب محمد حکم هست دیار دیاره بزرگان قوم همه اردالله قوم هستند. از این طریق از طریق ایرانه هاشون در نمید این و پسرش ایرانه علیه در این طبقه ما چیزی نداریم در این طبقه پسر ایرانه هاشی بعد از این طبقه طبقه مثل کولینیست خب کلینی که اوصف و ناصر حدیث ایشون نرم میکنه دیگران هم داییم که محمد نرگیر محبوب ایشون هم نرگیر میکنه حالا از کتاب یا واسده و این هست که از زمانه و این صاحب هم مقدار معتنابی از اون کتاب در کتاب کلینی وارد شده خب همونطور که فهمدن مردم از کلینی هم اجمالا گفته کافی آثار صحیح هست اجمالا گفته راسته اما ابحام داره نکته که مثلا کتابی که مشهور نبوده در خود کوفه و بردان چطور در قوم مشهور بعد از کلیمی طبقه بعدی ایشانه که اونام دارن اصلا چون شاگرده کلیمی بودن بعد از ایشان این طبقه بعدیش مرگوم صدوه مرگوم صدوه اولین است که در این چند طبقه یعنی شاگرده سکونی نوفلی مثلا در شاگرده او ای بود ایباره بعد علیه ابن سه بعد تا وقت کل نیشه ها شاگرده کلیم هنش دار صدو شیشومیه بعد سکونی شیشومیه چهست شخص که میاد همسال سال صدو, صدو نقل میکنه اولا زیاد نقل نمیکنه نسخه یک نقل نسخه قومیه نسخه را نماشه. در یک مورد تقییر گفته لاعمل لا و اعمل و به ما یعنفر درده سکونی این اولین کلام است که ما به سکونی داریم لا افتی به ما یعنی فرد و بهت سکونی این شد کاری که ما داریم این رو صدوق داره حالا من اینجا اشمالا میگم چون بعد اینشالا میخونم یه چیزی هم در این زمان ها یواش یواش آمنه راجع به سکونی دارن البته اونی که کلماتی که آمنه دارن قبل این زمانه اصلا تعویلی که آمنه اهل سنت راجع به سکونی دارن یکیشی از دقال حدیثه که این از کرد حدیث جرم از مثلا این جرم حدیث این سنگینی بوده مسئله نبوده که هم کسی دیاری مثلا توی شیعه زیاد شده حدیث زیادی و حدیث موضوع نه زیادی یک چیز موضوع نه این رو که یک شخص را واضح بزن وضع بزن یکیش به ش قابل درخلال مقاهس یکی از اتهاماتی که بهشون زدن منکر حدیثه یعنی احادیث رو نعم میکنه کسی نعم میکنه. این منکر حدیث مثلا در کتاب کامل ابن حدی آمده ابن حدی از زبان احمد شننه خب آراایشا میکنن می‌کنه ما زینی هم 5 سال نسبشیا به اندازه که خونتون نبوده از ذهن و رو قبول ندارم و به نظر نیست و ایشون تعبیر کرده منکرون حدیث خیلی عجیبه این تعبیر ابن عدی ایشون نترفای سی سایه سال کامل یعنی 16 سال قبل از وفات مرمون صدوق فقط صدوق گفته به احادیث منکرش عمل نمی کنیم. ما یعنی بریم منکرش این آقا گفتدم کلا منکره به حدیثه <تصفيق> خیلی عجیب یعنی واقعا یک چیزهای غریبید که گاه وقت در بعضی از جهان اگر دفت بکنیم با این اختلافی که ما با اهل سنت در خریم و رجال داریم ریش هاش یکی نه خیلی عجیبه مثل صدوب ریشه های کلامش با که یک نفر اهل سنت نوشته نفریکی آخره بحثم چونیم ازا به وقت چه آخر بستن بیشون میگه لا, لا اسنادن و لا متن اول شوزه منکرال بعد میگه مشکل جناغای سکونی اینه روایت که میاره کسی دیگه اون روایت نداره نه سندر متن خیلی عجیب این تو اهل سنت از اجایب کار اینه که همین سفرم تو ما هم هست خیلی عجیب خیلی عجیب کار قطعا ابن حدی نظر به سکونی در روایات ما نیست این قطعیست اینجای ای شبهه توش نداره یه دونم روایت از سکونی از جعفر محمد نداره چاپنش با دارده همه شده سن... از سنانی به خودشون و قطعیست اصولم تو مسادرشون هست و سکونی رو با هم جعفر ندارن کلا نداره فلیزا قطعا نظر مثل ابن حدی به اون است که سکونی توی مسادر آمه آورده قطعا نظرشون ب این چه چهره ناست. چیز عجیب اینه که بین ما هم همین طوره. ما چمایرمی لا یتا با علی مثلا سند این همه را در ان جعفر نبی علی ابای الانمیر و بعد رسول الله ما این سند در جرار نداریم محمد مسلم نداریم برای تو واسه ما لا یتا با علی اسناد متنه چیزهای نهم نکنه هم رایت ها با حاله از کردن فرص کنه صدات موساطه ما یه روایت از زراره داریم از امام صادق که اربعه از هم یا تمون از هم یا کلا که لای یا لای خسنه کنید ما یادم که کامپیوتر پیشنه است میسند ما روایتی که در اینکه عددداره یکیه را دو زراره را دیگه هم نداریم خونم چاک رفتنی که از سکونی داریم 6 تا تو یک متن 65 تو یک متن 70 است ببین این حدیث سکونی اولا لای و تاب علی اصرادر شو سکونی گه انجمن نبی علی ما از امیر موین نداریم مثلا خب ضرار خودمون صادق لسانی متن متن ما متن ما با متن سکونی فرق میکنه خیلی عجیب و حالا بعض یک نکاتی داره میخوام عباطه اهلستانت جزاگانی برام داشتن بود بخونم چون دیدانه اگه اختلافی پیدا شده من نکات اهلستانت همینو دارم با شهر بخونم یکی از عجالیه به اینه که این شخصی که معاصر با مفهوم صدوقه و اون طرف هم هسته یعنی خطعاً نه صدوق با ایشان ارتباطی داره ایشان با صدوق هیچ هم اون ابن عدی ناظره به رواست سکونی جامان احادیث داره در وقت ساعت مصابی هم با هم رابطه ای ندارن یکی از اجاید این کار وقتا اینجوری آمه هم به این نتیجه رسیدن که سکونی مشکلش این مطالب رو نعمل بکنه که لا یوتا باعده لا اصناده ولا مثلا اون که اگر بیدن فرصی یک شخصی مثلا 400 تا رباید داره از این 400 تا 308 تا 309 تا شد لایتا برنه وقت بعدش رو می میگن وضا این یعنی از آل حدیث از اونجا برست میشه بچه هم شد چرا شد وضا وقتی کف آمد و مایروی اصلا توصیف به بعد و وضاییت احل سنت خیلی مهمه اگر آمدن دیدن 400 تا حدیث داره 380 حدیث داره 90 حدیث داره لا یا تا لا سنده هم و مثل هم. اون آهایی که بعد میاد یا این وزایی خوب شوخی ندارد یه خوب وقتی سی ساد نوت تا سی ساد هشتا تحدیث بالای نوت در صدر عبارتی شید چاهد ندارد کسی لیرازو نرخونه کرده این تعبیری که آمه می کنن آمه ما مثل ما یروی این تعبیر اما مرحوم صدور چه تعبیر کرد لا افتی به ما ینفر به من ما ینفر دوبه رو پس اولین شخصی که ما داریم راجع به سکونی صحبت کرده مرحوم صدوق با این عباره دومی بعد از صدوق هم مثل شیخ مفید داریم ایشون چیزی نداره راجع به سکونی امثال شیخ مفید بعد از اینها نوبت مرحوم شیخ توسیز و نجاشی نجاشی اسم کتابش رو آورده چیزی نداره تخلیطات بین رسی کلینی با رسی شیخ صدوق ما مثل ابو غالب زراری داریم که شیخ و شیعه در بغداد بوده بسیار مرد بزرگواره ایشون توی اون فهرستی که بنویش به اصطلاح وسیع چیز میکنه اجازه میده اسم کتاب سکونی رو هم چیزی هم نمی‌گیره جو سکونی صحبت نمی‌ننه زمان شیخ توسی که طبقهش روشن شد دیگه طبقه صدوق بود دید طبقه شاگردای صدوق هم رد کردی. شیخ تونسی در قده مطلب می داره. اولا نجاشی هیچی راجی بیشون نمیگه این هم از اجایب فقط از عباز نجاشی معلوم میشه که کتاب رو دیده داشته یه قرنتها دار کتاب یک اختلاف در اینجا بین شیخ و نجاشی هست شیخ ستا کتاب بشنصبت میده نجاشی یکی بشنصبت میده این یک مشکل. یک مشکلی دیگه سر این است که شیخ در عده مطلبی داره این کلام شیخ در عده این فیما بعد مورد انایز قرار میگه بعد از طبقات شیخ هم ما دیگه مطلبی نداریم اولین کسی که باز بعد شیخ چند طبقه صحبت میکنه ابن ایدریسه ابن ایدریس هم صدوق رو میان باز بعد از او ما گزارشی داشت به سکونی در مسادر ما نداریم تا محقه رفیلی البته در این کتاب هایی زمان شده تا قبل شیخ توسی سراحتا تعبیر به عام بودن ایشان نداریم. الا یه عبارتی در کتاب رجال برگی هست روا عنال اوام اگر این عوام مراد آم باشه قیل از این دیگه ما چیزی در رجال نداریم از ایشان؟ مردم کشی هم تو رجالش در راجی به ایشان نداره از رجال ابن غذاری هم چیزی نقل نشده. این هم نه ها رو گفتیم هم بله ها رو گفتیم بله مرحوم محقق فرمزن موازه ای از کلم از مثال محقق قبول کرده که ایشون سنیه این یک و موازه از کلام شیخ دلالت میکنه که ایشون سقه است و رضا اصحابش بهش کرده یه جا هم داره که به ماین فرداده عمل نمیشه که آیه آی مرحوم در مسترد که ایشون همده گره ایتراز کردن علامه هم فیلمان برمانی که ایشون سنیست سن و اهل سنت بعد از علامه کسانی که آمدن ادهی تصویحه به کردن ادهی هم گفتن نه هم ثابت نیست اما همه تقریبا اتفاق کردن برای این که سنیه بعد از علامه تا زمان اخباریا که خوندیم برای یه ادهی یواشواش در مذهبش هم اشکال کردن اما موزن توصیه مرد کتاب به اسطلاح مرغوم محقق شروع میشه پیش ما این اجمال مطلبه بعدم بعد دیگه عبارت هایی که خوندید دیگه نیم رو تکرار بکنیم و کم و زیادهایی که در اینجا پیدا شد در میان مسادر شیعه که دست ما نرسیده این مسادر رو پیاردیان ما در کتاب لسان میزان که بعد عبارتشو میخونیم صاحب رسانیزان از کتاب شیخ توسی نرمی کنه اسم سکونی رو و بعد اسم اسمایل ابن عویزیاد رو در اونجا از شیخ توسی توسی سکونی ها نرمی از ابن عویزی که از علمای شیعه در یمن بود، حضر بوده و ما متاسفانه کتابیشان داریم و آشنایی درست داریم او شده دوزه بزرگ با اجمالا با مساظر ما اتباطی نداره این کتاب هم در اختیار علمای ما نبوده در اختیار ابن حجر بوده اینجا اینجا که اشتباه کرده آقا من میشاره تو مخوام عبارتش بردوغنم این هم عبارتی که خارج از ماست لاکه خیلی برده شهر یا برمه ششم یا هفتون روزه اگر باشه معلوم معلوم شیخ این راجع پس مناوردی طبق این لیست که ما الان دادیم معلوم شد که تمام بحث و حقیقت رفت رو عدد شیخ توسی سون در فهرستش و در رجالش این مطالب نداره در کتاب تحذیب و استفتارم یک جایی بیاد رواست رفت, رفت, رفت بکنه نداره. بلکه ایشون در کتاب مثلا نهایش در باب میراس مجروسی عمل میکنه به روایت سکونی میگه چون روایت وارد شده حتی گفته شده که در یک نسخ روایت صحیحه بلی این کلمه صحیح در همه نسخ نهایی نیست پس ما اجمالا معلوم شد که اونی که در اصحاب ما ایالون علی در درجه اول شیخ صدوق هست گفته لا گفتی به ماینتر دوبه که ابن عدنیس هم همین ها آورده در درجه دوم عبارت شیخ توصی در کتاب عده گروشنه تمام برگشت شیخ توسی در عده یه عبارت هم از شیخ توسی در کتاب نهایه هست که نسخش مختلفه تو بعضی آشه از ار اروایه تو بعضی آشه از ار اروایه تو صحیحه معلومات چونه جمع جوری بکن اول ما یک دست بندی به معلومات کنیم یک شکل و شمایلی معلومات پیدا بکنن بعد از پیدا کردن شکل و شمایل این رو به اصطلاح نه. اون وقت پس برگردیم به عبارت شیخ حالا ما این قده مرون شیخ خب چاپ های متعدد داریم این چاپی که ایسا دو جلدی شده بله در این طفحه ایشونی مقدماتی اینشالا حالا این بحث در بحث خبر بارد. تو بحث اصول بله یه مقدماتی راجعه به بحث وجه خبر دار اول وارد میشه بعد از او در صفحه سلاویست شیخ جلد اول فا اما مختر توه من المذهب اینجا برای مذهب رو به اصلاح و مختار م... مذهب این مختب فکری من مکتب فکری من در اصول در بابا وجهد خبر ایشون نرمیتن چون وارد بحث نیم خواهد بشن برگردن به همونجا به اون بحثی که به من اون وقت اینا دنبال بحث حجیت خبر هست در بحث این حجیت خبر همجور که میاد بعد یک سوال میکنه یکی از سوالاتشان در صفحه صد سویه ای انقید، انقید، انقید، انقید. از این سوال انقیل انقیل قیل از کلم این انقیل و انقید ایشان چون در بغداد مثل مهموس اونوزاق و استاده ایشان ها حجیت خبر عبور نداشت ازایشون سرکنن با با سوال و جواب و انقلت و قلت بحث حجیت رو بله قبول ندار یکی از سوالات اینه فینقیل کیفتون اولون علاها ده اخبار و اکثر رواته ها المجبره و المقلده و الغلات و الواقفه و الفتحیه و غیر هاولا منطقه رشیع المقادفه هم دل اعتقاد صحیح و من خبر الواهل ان یکون راویه عدلا انده من اوجه و العمل به و هازم مفقودون فی هاولا باید ایلله ها لا نقول انه جمعی اخبار احاد جزء جوز ما قال به وقت مرحوم شیخ در مقام جواب این فرقه ها رو جدا میکنه گذام یه اما مایردیه بامون من پس صحیح حالا مقلده خلال باشه خلالش قبول میکنه بله و من فرقه لذین اشار کنیم این مقلد مقلده صورت مبین نمیخور مارده ما مراجعه کنم من الواقفه و فتحیه و غیر زاله این کنمه ای فتحیه را میخونیم اما حدوزم خودم نفهم این فتحیه هست فتحیه از و چرا اسمش بودشون درست هم نیم دارم فعنزاله که جوابان خوب دکن بکنیم این عوالشه خیلی قابل خیلاش ایشون میگه روایات فتحیه و واقفه دو جواب میدیم جواب اولا انها ما یر بیه هاولا ها یا العمل و به اضاقان و ثباتن ثباتن فلیمه هم, ثبات هم باید کنید ثباتن شاکره باید ثباتن باشه اضاقان و ثباتن هر جه که علیف تا باشی این جمع موزکر جمع معلیس و سالم جمع سالم نیست مثل روات و ثبات جمع نیست مثل مدرسات و عالمات جمع اضاقان و مثل غزات غزات هم جمع نیست جمع و کسر رو بسه سالم نیست ایش رو ثباتن چپ کرده خیال کنه مثلا نسلش به نسل شده است بحث است لان ما ها اولای و به اضافه مو ثبات و انکار مو مخبین فی اعتقاد. من القول الرابع من زیادی ببینید چون من و تمسک به دین و, و الحدیث اون ولی دروغ نبودن، ترح نمی‌کردن. واها دیگه کان از طریقش، طریقت جماعته غلط شو کرده از اینجا. اصل ال علم علیه السلام. جمله‌ای از علمای معاصرین من کارش مثلا عبدالله بن بوکی و صناعت بن مهران، مهران. اینو واقفیه. عبدالله بن بوکی سا و چیز عبدالله بن بوکی فقریه، صناعت بن مهران واقفیه. که محض شران اثرش هیچ شما ثابت نیست مردم نجاشیان ایشا نسبت با که ظاهر اعزایش رو نفی بکنن شیخ توصی و صدوق نسبت دادن وقت رو به سماعه ثابت نیست و نهر بنی فضل بن ال متأخرین عنه ما فیه مواصر اون علی تفسیر یعنی ابن فضل پسر اون در زمان غیبت صغرا بوده و نهر بنی فضل و فتحی بنه و بنی سماعه این بلی سماه حسن و محمد بن سماه و جعفر بن سماه این های که کولینی به یک واسطه از اونه هم حمید ابن زیاد این ها واقفی هست مثل حسن که خیلی شدیده. فعلا علم ناخوب دقیق رو کنیم پس تو اینها این بحث حجر خبر میگیم این ها اینجا عرض کردیم اسم سقونی رو نورده من چند بار عرض کنم دارم اون جایی که صحبت سقاط داره اسم سرکونی رو سق این اسمایی که بازه اینه عبدالله هم بوکر سماعت ابن نهران منی خضا و بنی سماعه و من شاکله هم این و من شاکله اون کاری رو که محقق کرده مخام روشن بسیم محقق روز و من شاکله هم سکونی رو گرسه <تصفيق> اما اسمش نیهیست از کرده محقق چند بار افرادشون نهار که اینال امامیه مجذوتون، علاقل عمل به مراواه و سکونی و اخیرا از و من ماسله ما من نسقت. این عبارت نیست توی کتاب تا حال، الان اواز ور شوخونی در این بحثی که ایشون داره و من شاکلم. فیدا علم نه اما ها اولاء لذی ن اشرم الیهم و این کانو مختی این فل اعتقاد نه اوله و لبه و کانو سقاطن که نه اینجا دو جا کرد فمایه کون طریقه ها اولا طریقه ها اولا جازن عملو به این تحبیر جازن عملو ده اشاره به چیه؟ حجیتی چون از که در دست خبر تو بحث مکارسا این روزا که بس بساله نخونیم خیلی مطلقه تو بحث خبریه بحث این است که سبوت مطلب به خبره یه بحث هست حجیت مدلن این ثبوت رو ما با حجیت دوتا میزید سال و سال باید بنگه میکنه اون در خودم ها مثل شیخ حسوسی که نازر با اون زمانه به جای ثبوت میگوستن خبر واحد یو جبال این به جای حجیت هم میگوستن خبر واحد یو جبال امن اینجوری هر هره که مستقی هشویه به خودشون ادهی از اخبار اونها خبرواهد علم آمد چه فهم میکنم؟ مثل اگر راویسته بروش علم پیدا میشه طبعا اگر علم آمد عمل هم پسته این اینش دیگه میدونستن اما در مقابل ادهی میگونن خبرواهد علم نمیاره اما اینجه بول عمل این جازده عمل رو به مراد اینه. تقضیم. البته ایشون نمیشته جاز عملو به این جازه نه جواز تکلیفی باشه این محن وضعی داره یعنی حجت هست چون اینشالا یک نقطه خیلی لطیفی داره خیلی نقطه لطیفی من خیلی اکتفا میکنم به همه اشاره میکنم چون خیلی جوزه اصدار فندمیه ساموشه ما در باب خبر اگر حجتش وجود وجوب الاملیم اما در باب حتوهای فقیر جواز الامل خیلیطتی بزیین تخی طولشه. این جواب اول ولی جواب و این جواب اول مثل اما جواب ساانی، جمعی ماگرریح ها اونا چیزهایی که اینا نقل میکنن خوب دق کنید خته سو به روایی لا این کلمه اختص ها اوا یعنی این فه ریوااضبی از آن مط این اخت اختص یعنی چی؟ این این اینجور فهمیدن اگر این طرف منفرد باشه پس ریشه کلام مرغوم صدوق هم در آمر بلظه از فریم مثل مرغوم های توستری دوستا کلام به یه جور مرکن کلام صدوق باشه یعنی از این فهمیدن که اگر مخالفین روایتی نهار کردن منفرد بودن لایق مرده صدوق هم اقویتش این بوده لا افتی به ما یعنی دو بهیم اما عبارت شیخ اینه ان ما يرويها الا رخت سو به روایتی لا یعمل به و ان ما یعمل به ادرواک الی روایت اگر اضافه بشه به روایت اونها روایت من هو علی طریقه مستقيمه اما اگر طریق مستقیم هم داشتیم ولی اعتقاد صحیح فهین اذن یجوز علی عمل به فا اما ادن فرد فلای جوز که تیه علا حاله پس این روشن شد مرحوم شیخ توصی دو نکته در باقع عمل به روایات واقعی یه افرقه اهل سنت هم اسم بوده و زادیر مرحوم شیخ این است که اینها رو با دقت یدا کرده چون برداره به اما مارواه و گلاه جواب میده و هم من مجبره و المشبهه اونم جواب جدا داره می ده. البته مجبره و مشبهه در فرق احر سنت بیشتر بودن این رو بیشون بود اینجا بانو نحر سنت مطرح نمی پنه بانوان محض کلامی که جبر و تشکیه باشی این لازه به یه قسمت از کلام مرون شهر توسی که الان براتون خوندیم البته جمعی امایر بی ها اولا الخت و سو روایت لا یع ملو به به این نما یقمن و به ادندات الاره وارد یعنی این وارد و این مطلب که شیخ فرموده این ظاهرش همونیست که صدور گفته راسته لا یقمن به ما یعنفر دوله لکن خود ما یکی بایی ربه ها مدید خود ما احتمال بودی که شاید محلوم شیخ خیلی دقیقت نفرمودن در قلاق در این مثلا واقفی یقفتر یا اینها لا یعمل به ما یهتصونه به روایته نه لا یعمل به روایته شخص نیمتر و یهتصون فرق این دوتا نصفی در چیه که خیلی ذریف و لطیفه و خیلی هم شواهر میخواد و نخاب داره که اونم ترون جزه اصلا همه رو صحبت بکنی در اینجا این که اصولا یه قفل کنیم ما دو بحث داریم یه بحثی اینه که شخص یهتصون به بحث. این یه بحثی که الو بعد اینشان در شعن کلام و صدو بحث انفراد و اختصاص رو گذازانه اینشان تو این چون لطیفه مطرح میکنه و اقسامش و, و انواعش و یه بحثی دیگه این که اختصاص فتحیه بیادیم اون روی که باید مرحوم شهر بهش تنبوح پیدا میفهم به نظر این بود حالا این کی داره تاریخی این کیه کی این کار شد چرا این کار شد دیگه خیلی ظرافت داره که شاید من خودم متحرض بشم بسیار های نسبی در اینجا هست و نه اینکه کس شنو تا کرده باشه اینه که احتمالا با گذشت زمان بعضی از روایاتی رو که فتحیه یا واقعی نقل کردن کرد از اینکه فرض مثلا من با مثال علی بن علی حمزه بطائمی واقفی نقل کرده و کسی که نقل نکرده یواشواش مضمون روایت مذهب واقعی‌ها شده تو تو راست. این خطا سو بر نه اختصاص علی بن علی حمز بر مثلا ما الان در باب این که اهل سنت زن رو سه طلاق کرده چه کار بکنیم؟ خب یه روایت داریم که اینا نگیرید چون از چوهر دارن. سه در مجلس واحد میشه صدق یه روایت داریم که خودتون بگیم پیش این سنی بگین تو زن با دو تا شاهه. تو زن طلاق بدی یا گفت بره. اون دوتا شاهده می شیدن. از اون وقت اده حساب کنیم بعد از او بگیریم این کلمی کلیمی رو در واقع زنی که سه طلاقه از اهل سنت در مجلس باهر سه طلاقش کرده کلمی این رو آورد. منو رو می شیخ تلسی روایت نمی کنه از واقفی ها بعد می رو یکی از واقفی ها سال نخیم یا او سا او ما. زراذفی بود اولا مگر چه شیء مثلا او ما رواه علی نبی حمزه علی بن نبی حمزه گفت که قال صادق علیه السلام ما اگر اونا این ذمه مطلقه ازاها شو مطلقه ازا بکن الزمو. این روایت رو الان فقط شیخ طوسی آورده فقط همینش ناقل اینی قاضی الزام بعد از دای اجماع برش ما بر شده ها مسئله شوخی هست ادای اجمام مکرر شده که قاضی الزام روش قبول داره مثلا اجماع این اجماع بر رو که شیخ منشی نوشته گفتن شیخ اثر قاضی الزام منحصر به این روایت علی بن نبی هست خوشا جای دیگه هم نداری در باب طلاق هم هست از کردم صدوق روایت داره که اصلا نمیشه بگیری شوهر زن مثلا کلینی هم اون راه دیگه رفت این راه سوم که نمیخوین بگیریم اینا مشوهر هستن هیچ مشکل نذ طلبشون صحیحه و شما میتونی اینا رو بگیریم به تعبیر اون راوی گفت لا عجز او اوسع ما رواه او علی بن حمزه ببینید اینجا ده شما میگید این روایت یختس و رو به نقل ها ابناری حمزه این بحثه یه بحثیه که میگید نه اختصاص واقعی بین مثلا ما یک احتمالی دیدیم شیعه حنشیان که کلینی مثلا اون روایت اول یواشه وافقیه از شیعه دیگه جدا شدن این قاعده الزام اعتقاد وافقیه بود نه اجماع شیعه امامیه <تصفح> خیلی لطیفی خدمت لازم اختصاصو به روایته یعنی اینها وافقیه به عنوان یک مذهب میگم چنجوری گفتنشو خیلی ذوقات به که زرا بهش خیلی لزارت خاصی داره و و یکی از مناشه ای کسانی که مثل مرحوم آقای خیلی از روایات و غیر از آقای خویی قبول کردن این کار از زمان شیخ شروع شد مثلا این روایت نظر احرام قبل المیقا توی سندش واقفی هستن حالا یک سندش تو سماعات ابن که اگر واقف باشه حالا همونه حالا اگر واقفی نبودن از بیراسای واقف هست که نظر قبل از احرام نیدون از کرد نه کلنی ارده از حدوق عوزهنت فرش باش در کتاب مغنعه اصاب قبل, قبل از شریه توصی نوزند که ان هم ااحامه ببند قبل از میقات با نب پس این کسایی که شب میخوا به فرودگاه احسایر از هم چه هم نرز دن قبل از میقاات ااموندن و ش هم هست تو دیگه بهستا کفار نداره این راحل رو که عده رفتن برای اینکه این که اون مشکله ها چون جده خودش میقاد نیست مازی میقاات هم نیست یک مقه رد میشه از ماهزی میخوام نمیخواماز اون بحث مدینه که میقات نیست که دوی خودشون بحثش بازم اون آوالی که جده میخوام دارم بزن اصلا خدمتتون اولا فواد ما اینه که اون روایت مفادش این نیست که آنون این یکی مفاد اون روایت اینه هست که اصولا نه احرام قبل از میقات دائما صحیحه با حالت نر واجب میشه اصلا مفاد روایت اینه نه اونی که آنون لایزور احرام قبل میخواد الا در نزد و در ما رجب عمر رجب. نه اون نیست مفادش اون نیست این شرح این که مفاد رواید چیه این شده این یک دو ما با قرار و شواهبی احتمال داریم که این مذهب واقفی ها بوده این خیلی مهمه چرح اون شواهد احتیاج وقت فقی داره این هم نکته فقی داره هم نکته اصولی داره الان جایی هیچ کلومش نیست چند اون مطلب نکته فقی داره که بعد ما توضیح شدیم به احتمال بسیار قوی پیش ما واقفی ها احرام قبل تو نه از احرام قبل داری از زمان صحابه شروع شد و جنجال ایک زمان عثمان شروع شد یه پسر داره که سعده بن کریز کلای زکیه این نزد که اگر خراسان رو فرد کرد زمان و عثمان علت همینجا تا مکه عمره پیاده بیاد و احرام ببنده از نیشابور احرام بست تا رسید به مدینه و به مکه برای به مدینه که رسید عثمان سقوم شو این کارو کرد کی میشه گفت از نیشابور احرام می روند یعنی چی گفتم احرام ببندی بعد احرام گه چون پیغمبر در فهمیدن با بود از نیقاص باشه اون میگه نه شا این دیگه از اونجا سرسد است اصلا سرسدای بحث از اونجا شروع شد اصل تسلای بس بله از عمر هم که از فلسطین احرام بست اما سرسدای وقت بین اهل سنت و رضا از زمان و اثمان دو خد شد مشهورشون گفتم حق با اون که سن اون شد میشه از وقت دورم احرام بست اما ازدهشون مثل ابن حض اقیلا نه هم با اثمانه قبل از میخواه که میشه احرام بست رفته نشد در کوفه متأسفانه نصفت میدادن برای رومانی که میشه بست حقیقت بکنیم حتی روایت داریم که ادعای از بزرگان مثل ابو همزی سومالی که از بزرگواری است وارد برای خیلی ریاضشون به بود. من چه لیش از کوفه اراضی. خب بگم تو ذهنیت اهل کوفه از خب چرا از کوفه از علی بن علی سلام کرده؟ از اون کدی علی این مطلب. خب بگم ظاهر مطلب است که این مطلب در کوفه میانش بوده یعنی با با اون سر. چیزه کاریه از این از نیشابور اهرام از از تو نظری کرده بود اون طریق بشه، لکه نظر او این طور بود که احرام از نیشابوریش کردن با نظر واجب میشه. ما معطلی این هم تام مفادش همینه. ما هم مفادش همین. یه یه بسیجیم جزیی. بعدها امام صادق اصرار داشتن که حق در این مطلب این است که چی میگاته هم. و این مطلبی ای که در کوفه بعدی نبی فرمودن صرفن درست نیست. کده با علاقه ظاهرا پیما بعد واقفیه بناشون به همون نرل کفیه ها شد ظاهرن اونا بناشون به شد که هر همونی که منصوب برمیون مومنین بود که احرام قبل از نیقات جایزه اگر این مقدمات روشن بشه یک ای در تاریخ تقشیع و روایات شیعه که خیلی زنگی اون نکته خیلی زنگی اون نکته اینه که این فتنیه و واقفیه خوب دقیق بکنی اختصو به روایت این لایه اختصو نه اختصر راوی خیلی نکته و اگر نکته این باشه این نکته در مثل اهل سنت نمیاد دیگه چون معناش اینه که اهل سنت داره یک فتمایه باشه هم باشه ما اگر روایت داشتیم باشیم تبقیه فتمایه مشهور اهل سنت توی احتمال تقییه هست یعنی این نکته است که از ما آمدن بین اهل سنت با فتحی و واقفی فرد روید کنم زرافت کار رو جلد شد میدونم زرافت کار رو بقیر کردیم چطور شیخ آمد در اینجا مثلا واقفی از فتحی ها دو تا جواب دار بعد با و اما الگلاس اینطور و اما ال مجدره بقیر بکنیم یعنی نقطه فنی چی شد؟ نکته فنی که این نکته دوم، هم تو روایات آمن اگر طرف سنی بود نیست چون اگر طرف سنی بود و یربی یعنی ما یختست و اهل سنه داری این حمله بر تقییه هم میگه به نسبه ها بر تقییه تو واقفی و فتایی که من رو ببینی که امام از فتاییه بود تقییه بکنه خیلی ضروری به نکته اما در نقطه انفراد را میگوشون فهمو بکش سنی میشه فقاهه شیعه نمیشه. در نقطه افتخاری چرا شیخ طوسی میاد اینا رو جدا میکنه؟ اینا رو یک طرف میذاره، اونا رو یک طرف میذاره. اگر مراد انفراد بود، فرقی بین سنی و کعهی نیست، انفراد شخص. اما وقتی انفراد انفراد مذهب شد اونجا فرق از بین فتحی یا بین سنی چون اگر یک مطلب بین اهل سنن جا افتاده بود خب امام تقیی کرده ما سمیعت منی ما یوش به ها قولت ناسیه تقریح. اما امام نمیشه بگیم تقییه کرد از وقتی ها از وقتی ها از بلی که میشه که امام کرده پس در حقیقت خب دفت کردیم پس این مطلبی رو که مرگو محقق فرمودن که شیخ در مواضی فرموده ان ال امامیه مجمعا عمل العمل و سکونی و عمار مرحوم حقیقت اشکار بگم به کلام سکونی و عمار رو از یک باب گرفتن اما فتحی سکونی سنی این دیگه باب نیست اوف ظرافت کار روشن شد اما فتحی و سکونی سنی این ها یک باب نیستن که تصور بکنیم که مثلا مرمون شیخ مقلده را اول جواب داد دو سرطه این چه مقلده بعد راجع به سرق واقفیه بعد راجع به غلاب بعد راجع به مجبره و مشبهه اصل این مطلب معلوم میشه که قدمای اصحاب ما که شیخ داره کلمازشون مرمونه یک دقیقه ها و ذرافت های لطیفی بوده پس هر شد عین عبارتی که اختصو رو بر روایته یا اختصر راوی بر روایته خب هر دو جامعه دارن دیگه جامعهش دیگه نه همین این همون تصور محققین معلوم شد که این نیست نکته و اون نکته حقیقی که اصحاب ما اعتراض کردن نه ما یختصو رو بر روایته مختصو رو بر روایته یعنی بعدها آمدن دیدن که مثلا این روایت عرض مهم این در فقه واقعی جا افتاده تو فقه ما نه, نه بحث فقط روایت تو فقه ما ستواش نیست احرام قبل المیقاد با نه و تو فقه واقعی جا افتاده خوب دقت نیست تو فقه ما نیست روایتش خوب دقیقه الان این روایت نظر احرام قبل المیقاد در کتاب حسین سید هست در کتاب سفار هست در کتاب نوادار حکمه هست هر سه از کتابه ما هست گمدقت مکنید هر سه نفر از بزرگ مثلا که جزر بزرگان سه از این اجل روشن پس یه رفع میگیم روایت در مسادر اونهاست نه تو مسادر ما هست یه رفع میگید مبنا مبنای اونهاست خیل خیل اونهاست روشنی شد چی ما هم بگم؟ خیل خیلون هاست نه روایت روایتون ها الان ستا از بزرگان ما روایت نزبه از, نزب از احرام درم برده همه هم از مسئله داریمان دیگیست حسین سعید و نوازه حکمه و کتاب و سخون لیکن معذاله خیل ها واقفی هاست خیلی ازدرافت های زشن این مسئله نگفت برای تو درم اینشالله فردان ستنه میگرم